بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین تاهرین المعسومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین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 السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحين، السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین السلام و علی بن ابن الحسین زین العابدین السلام و محمد ابن علي باغر علم النبیین السلام و علی جعفر ابن محمد الصادق السلام و علی موسی ابن جعفر الکاظم السلام و علی بن ابن موسی الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد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 و الليل اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الأهد النیل زیارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين أعظم الله أجورنا و بمصابنا بالحسين بالحسین عليه السلام و جعلنا و ایاکم من اتحال بین بساره مأواليهی الامام المهدی مرحوم علامه مجلسی در جلد چهل چهار بهار صفحه دویست از امام باقر عليه السلام روایتی نقل میکنن که امام باقر فرمودن وقتی امیر المؤمنین علیه السلام در واقعی جنگ سفین بوده علیه ظاهر از سرزمین کربلا رد می شدن نگاهی به آن زمین انداختند و فرمودن حاخنا مناخ و رکابن و مسار او شهدا شهده لا یسبقهم منکان قبلهم و لا یلحقهم من بعد اینجا محل فرود آمدن برجستگان است و اینجا جایگاه جانباختن شهیدانی عاشق است که نه قبل از آنها کسی از آنها ثقت جسته و نه بعد از آنها کسی می تواند از آنها ثقت بجوید. خب ما همه به عنوان آشقان، شیفتگان، دلدادگان عبی عبدالله الحسید علیه السلام سالیانی دراز به اختزای عمرمون آشورا را دیده ایم، محرم را دیده ایم، از موده ایم ولی اگر با توجه به این روایت از امیر علیه السلام این سوال رو طرح کنیم مگر شهدای کربلا چه کردند چه ویژگی داشتند چه جنبه ای در شهادت اونها نهفته شده که امیرالمؤمنین سیدالوسیبین بفرمایند نه قبل از اونها کسی توانسته از اونها سبقت بگیرد و نه بعد از اونها کسی میتواند به مقام اونها برسد طرح این مسئله چند فایده داره؟ یک، بفهمیم که قضیه کربلا چه بوده؟ و مسئله شهادت عبی عبدالله و یارانشون چه بوده است که امیرالمؤمنین المؤمنین اینا کسانیان هن؟ مسار و عشاق شهدا، ولی اون شهیدانی که نه قبلی ها توانستن؟ سبقت بجویان نه بعدی ها که این برای ما جا بیفته دوم اگر قرار ما از امام حسین درس بیاموزیم و از واقعه کربلا پند بگیریم و این مجالس تنها برای سوگواری و ازاداری نیست برای درس و حدب ابی عبدالله رو بهتر شناختن و عملی نمودن است چه بوده است که چون این فرمایشی بیان شده به نظر می رسد در این جمله شهیدان عاشق یه رازی نهفته شده که بر مبنای عاشقان شهید شدن چون ارزشی رو پیدا کرده. پس اینجا باید چند سوال طرح بشه یک عشق یعنی چی؟ کار آشقانه یعنی چه؟ و آیا کار آشقانه با کار آقلانه منافات دارد؟ اینکه برخی متاسفانه این حرفها را رواج دادهاند و میدن و این سخن بسیار خطا و اشتباهی است و ممکن مشکلات بسیاری را آگاهانه یا ناآگاهانه به همراه داشته باشه؟ کار عاشقانه با کار کارعاقلانه منافات پیدا می کند یا نه. و ویژگی یک کار عاشقانه چیست و اگر ما بخواهیم به این مقامات به اندازه ای که ممکن است نائل شویم برای اینکه کار ما هم کار عاشقانه شود باید چه بکنیم؟ پس برمیگردم روال بحث و انایت بکنید، چون پنج شب انشا الله به لطف الهی بیشتر فرصت نداریم این بحثم یک بحث عمیق ریشهداره هم قرآنیست است هم روایی است هم فلسفی است هم عرفانی و هم این چارتا با هم یک بحث مهم اجتماعی که ما امروزه با عنوان مسلمانان به ویژه شیعه در نظام اجتماعی و حرکات اجتماعیمون از این بحث رفتار عاشقانه، رفتار عاقلانه و همراه شدن این دو با هم چه می آموزیم و چه باید بکنیم؟ خب، اولین مطلبی که مطرح می شود اینه که عرض کردم وقتی امیر و المؤمنین علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدن قبل از واقعه آشورا و ابی عبدالله بفرماین اینجا مسار و شهدا اینجا جایگاه جنباختن یک آشغان شهید است یا شهیدان آشغ است به نظر میرسد با توجه به این قید فرمودن نه قبلی ها سبقت گرفتن نه بعدی ها میتوانند سبقت بجوین خب ما میایم این سوال اینجا مطرح میکنیم اصولا وقتی انسان کاری را انجام میدهد تلاش و اقدام و عملی دارد این عمل به اقتضای پشتوانه و انگیزه ای که برای آن عمل مطرح است ارزش پیدا میکند ممکنه دو نفر یک کار را از جهات ذات کار و انجام عمل کاملا یکسان انجام بدن ولی انگیزه یکی با انگیزه دیگری به شکلی تفاوت داشته باشد که همون یک کار را که دوتایی به یک شکل انجام دادن مال یکی قبول باشد مال یکی معصیت حساب شود تا این اندازه حالا گاهی مال یکی مثلا یه اجر داشته باشه مال یکی ده اجر مثال میزنم کمک به یک مستمن دستگیری از یک انسان نیازمن ذات این عمل کاریست فعلی است که یک انسان میتونه انجام بده ولی اگر دو نفر با همدیگه در دستگیری یک انسانی اقدام کردند، این انسان هم ایکس تومان به اون فرد داد که دردش رو درمان کنه دیگری هم همون ایکس تومان را به اون فرد داد که به دردش بزنه و دردش رو درمان کنه ولی از این اولی به نیت رضای خدا به یک کار خدا پسندانه ریا در اون نباشد، تزویر نباشد، تظاهر نباشد چه اجرها ممکنه داشته باشه؟ اما اون دیگری به قصد ریا، به قصد سوء استفاده به قصد فریب دیگران که خود را خیری جلوه بدهد چون این کاری کند و این تنها معصیت هم حساب می شود نه تنها عجر هم ندارد پس کار گرچه چه انسان بدون تلاش و کار به جایی نمی رسد قرآن کریم می‌فرماید لیس انسان، الا ما اگر قرار بشر به جایی برسد باید تلاش کند باید حرکت و فعالیت داشته باشد تنبلی و سستی و پویا نبودن در فرهنگ قرآنی پذیرفته نیست و همین قرآن کریم در چند جا نتیجیه اعمال و بر مبنای تلاش مفید به مقامات رسیدن را چگونه مطرح می کند و لکلن درجات مما مم عملو و ما رب بکب اما تعملون دوبار مسئله عمل رو در این آیه شریفه به کار برده با دو تا نکته عمیق که توجه میده یک و لکل درجات هر کسی با. یا هر جامعه ای اگر به درجاتی نائل شده درجاتی که خدا بپذیرد و درجه حساب کند این روزا تقدس الهی نتیجه چه میداند و لکل درجات مما عملو نکته اول به درجات نائل شدن به مقامات نائل شدن در پیشگاه خدا دارای مراتب و مقامات گشتن بر مبنای اعمال است بعد در ادامه و ما که به قافلن اما تعملون پروردگار شما قافل نیست که شما دارید چه کار میکنید یعنی کمیت کار روش حساب نکنید کیفیت کار روش حساب کنید خدا توجه داره که این کار شما بر چه مبناست همون مثال اولیه که زدم از نظر قرآنی روایاتم فراوان در زیل این آیات که اگر بناست به جایی برسیم باید تلاش کنیم باید زحمت بکشیم باید کار کنیم این محفوظ از نظر حکمی حکما یه تحلیل عقلی کردن، تحلیل درست و به میگن شما وقتی موجوداتی را استکمالی شناختید، یعنی موجودی که میتواند کامل شود، تکامل پیدا کند، به درجات بالاتر بیاد. مثلا شما یه انسان در هر درجه ای از علم که قرار گرفتید امکان عالمتر شدن هم هست، در هر درجه ای از هنر که قرار گرفتید امکان هنرمندتر تر شدنش هم از اینو میگن استکمالی یعنی به درجات کمال بالاتر هم رسیدن و درخواست کمال بیشتر نمودن موجودات استکمالی میتواند کمال بپذیرد، کامل شود بالا بیاد و میتونه موجود استکمالی درجا بزنه رشد لازمش رو نکنه به تعبیر خودمونی زایعه بشه ناقص بمانه خب کمال یک موجود استکمالی چیست که میگیم این موجود تکامل پیدا کرد استکمال یافت بالاتر رفت میگن تبدیل قوه به فعل. و از نظر حکمی یه تعبیری به کار بردن میگن اگر بخواید حرکت که نقطه مقابل سکونه معنی کنید سکون در جای ایستادن هیچ تغییر و تحول و تبدل پیدا نکردن الان این دستمالی که تو کف دست بنده قرار گرفته به یک معنی ساکنه حالا اگر همینو من یه تکانی بدم از سکون درآمد اگر این دانه گندمی باشه تو کف دست من بمانه ساکنه حالا این دانه گندم رو توی خاک قرار دادم جابجا جا نمیشه ولی یواش یواش ریشه میده میره پایین ساقه‌اش میاد بالا این داره تغییر و تبدل پیدا میکنه لذا وقتی میخوان حرکت را معنی کنن میگن خروج شی از قوه به فعل سخن درستیه شی ای که قوه دارد حالا این شی منو شما یه انسان باشیم اون دانه گندم باشه چوبی باشه که میتونه تبدیل به منبر یا در و پنجره بشه اگر از قوه به طرف فعلیت یعنی اونی که میتونه بشه این سیر را آغاز کند اینو میگن حرکت از سکون در میاد اگر قرار انسان به درجاتی نائل شود که قوه اون درجات در ذات اون نهفته شده سکون درجا زدن هیچ نوع حرکت و تحولی نداشتن مساویس با نقص و اون قبه ها شدند حالا اگر قرار حرکت کند یعنی این قوه به سوی فعلیت شروع کنه به تغییر و تبدل پس انسان اگر قرآن فرمود لیس للانسان الا ما سعا، اگر قرآن فرمود لكل درجات مما عملون بر مبنای عمل است و حرکت است که موجود میتونه جلو بره اما همه حرف اینجا به بعده حرکت انسان در یه دستبندی اولیه خیلی کلی دوتا میشه حرکت جبری، حرکت اختیاری آیا کمال بشر، تعالی بشر، سعادت بشر؟ با حرکت جبری تنها کفایت میکنه؟ قطعا نه همه ارزش انسان اینه که قدرت انتخاب و اختیار دارد این اراده و اختیارشو دخالت بده بر مبنای اون حرکاتی را در پیش بگیرد اعمالی را آغاز کند که بر اساس اون اعمال و حرکات به اون جایی که قراره برسه برسه پس حرکت جبری رو میذاریم کنار میاییم این طرف در. حرکت اختیاری در حرکات اختیاری اونی که در درون من باعث میشود من این عمل رو انجام بدم برگردیم با اون مثالی که ارز کردم ایکس تومان به یک فردی بدم دردش درمان بشه این با اراده خودم یه وقت با جبر با یک زور حاکمه بر من خب این که یه بحث دیگری است. جب نبود این کار از من سر نمیزد ولی اونجایی که خود انتخاب میکنم و این عمل رو انجام میدم میام روی این انگیزه ای که وادار میکنه این کار رو بکنم یه وقت تقلید کورکورانه بدون پشتوانه معرفتی و اندیشه است چرا این کار رو کردید؟ خب دیگران کردن ما میکنیم این ارزشی این نداره حالا اگر من در یه جامعه ای واقع بشم دیگرانی که این کار رو کردن من دارم تقلید میکنم اتفاقا کار خوبی کردن خب از غذا کار منم خوب میشه ولی اگر من در یک جامعه ای باشم که دیگران کارشون غلط بوده چون من بنای بر تقلید دارم دارم از اونها تقلید کورکورانه میکنم خب عمل منم غلط از کار در میاد این که ما رو به جایی نمی رسونه باید عمل یک پشتوانه معرفتی داشته باشه اگه به من بگن حتی چرا این کار از فلانی تقلید کردی میگم چون فهمیدم چون شناختم چون تحلیل دارم فلانی کسی است که کارش درسته حالا که کارش درسته منم از او تبعیت میکنم. پس اینجا طبعیت بر مبنای تقلید کورکورانه نیست. بر مبنای تقلید آقلانه اندیشمندانه است. اگر ما تو تاریخ میخوانیم ابوزر وارد مسجد النبی شد بارانم باریده بود. اطراف مسجد النبی در اثر باران خاکها خیس، ولی جای یه پا بیشتر به چشم نمیخورد. ابوزر که اومد دید پیامبر خدا تو محراب نشسته سلمان فارسی هم پشت سر پیغمبر خدا نشسته پرسی سلمان از در دیگری وارد شدی؟ نه قبل از باران وارد شدی؟ نه سوال بری چه می پرسی؟ آخه من یه جای پا بیشتر ندیدم سلمان جواب داد من تلاش کردم در راه رفتن هم از پیغمبر تبعیت کنم پامو گذاشتم جایی که پیغمبر پارو گذاشت اما سلمان بر اساس معرفتی که نسبت به پیغمبر اسلام داره شناخته که اگر پیام است لقد کان لکم فی رسول الله عصبتون حسنه او سرمشق زیبای زندگی منه او قرار نحوه حرکت منو به من نشون بده. این یه جنبه ظاهری فیزیکی داره. ولی من چنان او را پذیرفت ام که هم در جنبه‌های فیزیکی میخوام از او الگو بگیرم. هم در جنبه‌های متافیزیکی که مهمتره از او الگو بگیرم. اما اگر این پشتوانش رو کنار زدیم تنها بر مبنای تقلید کرکورانه باشد این که ارزشی نداره. لذا توی یه که زمینه تقلید افراد ناجور فراهم مردم در اثر تقلید از ناجورها حرکت ناجور رواج پیدا میکنه یه دفعه شکل پوشش یه جوری میشه شکل آرایش یه جوری میشه مد نمیدونم دکور منزل یه جور میشه نحوه ازدواج ها یه جور میشه اینا بر مبنای چیست بر مبنای این که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو ولو تحصیل کرده دانشگاست ولو عنوان پروفسورو چنین و چنان دارد اما ناخداگاه داره تقلید کورکورانه از جامعه و جو غالب میکند. کند اینجور اعمال با تحلیل نه تنها ارزنده نیست مخرب است شکل دوم اعمالی که انسان میتونه داشته باشه اعمالی که بر مبنای احساسات و هیجانات از انسان میتونه سر بزنه احساسات و حیجانات ما هم مثل مسئله تقلیده گاهی تحت تأثیر یک عاملی که احساسات ما را به سوی یک امر مفیدی تحریک میکند حیجان و در ما برمیانگیزه ما به اون سمت میریم اما چون عادت کردیم احساساتی هیجانی باشیم حالا اگر در یه جو دیگری قرار گرفتم یه افرادی هنرمندند جوانمندانند و میتونند خواسته خودشون را ولو باطل است با یه شکلی تحریک حیجانات و احساسات ما رو تحت تاثیر قرار بدن ما رو به اون سمت بکشونند آیا افراد جامعه که هیجانی میشن احساساتی میشن و تحت تاثیر افراد قرار میگیرن اینا میتونن یک حرکت درست پیشبرنده کمالزا داشته باشن مخصوصا کسانی که قصد سو استفاده از انسان ها را دارن راحت تر میتونن با حق بازی تحریک احساسات و هیجانات را صورت بدن یکی از مشکلاتی که ما در طول تاریخ برای حق و پیروان حق داریم همینه آیا امیرالمؤمنین که میخواد مردم زمان خودش رو با خودش همراه کنه برای حرکت به سوی کمالاتی که علی میداند اون کمالات چیست؟ و میخوادیم مردم را با اون کمالات برسونیم. میتونه از شیوه های باطل ناحق نیرنگ تحریک تحریق کننده حیجانات و احساسات مردم که معاویه میتونست انجام بده علی میتونه انجام بده؟ نه نه یعنی علی بلد نیست نه یعنی علی این زیرکی را برای تحریک احساسات و حیجانات ندارد میگه نمی بر مبنای اینکه که حق نیست باید از طریق حق افراد حرکت کنن پیش برن و لذا در نحجل بلاغ حضرت این مطلب رو تصریح فرمودن مردمی که تحمل عدل را ندارن چگونه میتوانن ظلم را تحمل کنن معروفه میگن ناپل اون در فرانسه یک فیلسوف زمان خودش مراجعه کرد گفت مرا موعظه کن اون فیلسوف یک سخن فیلسوفانه بسیار قشنگی را در رابطه با این بحثی که الان بنده دارم مطرح میکنم به ناپل اون گفت حنایت کنید چی گفت گفت شما که با صدای تبل به حرکت در آی و با صدای تبل از حرکت باز میمانی، به مععزه من که با اندیشه سر و کار دارد چه رابطه ای داری؟ یعنی یه وقت شما یه جوری حیجانی الان این مارش رو این تبل و کوبیدن به گونه که چنان به حیجان میاد بالا پایین میره صداش پایین تر میاریم آروم میشه پس این اقدام بالا رفتن این سستی مربوط به اون تحریکی است که در او ایجاد میکنه اما اگر یک انسانی این عامل حرکت یا عامل سکون اندیشه درونی باشه تفکر از وجودش باشه تحلیل عقلی از دنیای دروشش. این قابل مقایسه نیست یه آدم متفکر رو نمیشه با این امور احساساتی به حیجان واداشت لذا هیجانات زمنی که در بعضی موارد خوب است و میتونه به عنوان چاشنی غذای جان نه اصل غذای جان شما گاهی همین غذایی که به این بدن میخواید بخورانید یه چاشنیایی میزنید که یه مقداری جذابتر بشه طرف میل بیشتری پیدا کنه. به ویژه اگر بیمار اشتهای به غذا نداره الان سوپی رو دستور داده پزشک که حتما این بیمار باید از این سوپ بخوره. نون حالت بیماری و تب و غیره و بی اشتهایی نمیذاره میگنید چاشنی هایی بهش بزنید بذارید جذابیت پیدا بکنه ولی این چاشنی ابزار جذاب کردن اصل غذاست نه اینکه این چاشنی غذا باشه احساسات و حیجانات مثبت میتونه چاشنی باشه ولی واقعیت نیست لذا اعمال بر اساس جبر نه اعمال بر اساس تقلید کورکورانه افراد را به جایی نمیرسونه. اعمال بر اساس احساسات و حیجانات مقطعی منهای پشتوانه اندیشهای تحلیل کننده ای که معرفتمندانه باشد انسان را به جایی نمی‌رساند ولی در بین همه اینها دو انگیزه هست در درون ما که هر دو عالی و ایدئاله ولی با همدیگه در تفاوت طولی قرار دارن نه تفاوت عرضی یکی از اشتباهاتی که در طول تاریخ و در عصف ما نسبت به این امریکه الان میخوام عرض کنم صورت گرفته و مخرب شده این تفاوت طولی رو تفاوت ارزی گرفتن یه توضیح مختصری برای برخی دوستان کم سن نسالتر در رابطه با تفاوت طولی و ارزی ارز کنم بعد برگردم به اون دو انگیزه و دو منشع در درون عنایت بکنید مثلا فرض کنید ما داریم جدول ضرب را به بچه های تبستان یاد میدیم ای یه گروهی دیروز یاد گرفتن ردیف اول رو 2 تا 4 تا 2 سه تا � Tube دوده تا 20 دو هنوز تا تا. به ردیف سوم نرسیدن سه دو تا 6 تا 3 ده تا 30 تا. دسته دوم به این رتبه سوم رسیدن میخواییم اون ردیف سوم هم یاد میدیم اولی میگه به ما گفتن دوده دو تا 4 تا به شما گفتن که سه دوتا 6 تا, شش تا. میگه بله اینی که به ما گفتن به آنی که شما گفتن فرق داره ولی اینا هم دیگر رو نفر نمی کنه. یه چیز بالاتره یه مطلب دیگره شما بیا بالاتر باید اینجا رو متوجه میشی این میشه تفاوت طولی ما در معرفت مثلا آیات قرآن تفاوت طولی داریم اله ماشاءالله یکی از یه آیه قرآن مثلا در حد فرض کنید ده میفهمه یکی میاد در حد بیستشم میفهمه یکی میاد در عدسیش هم میفهمه این که گفتن قرآن بطنان در بطن داره روایات معصومین بطنان در بطن داره نه اینکه این یه بطن و یه بطن رو نفی کنه اینا معارضه با هم نیستن اینا منافات با هم دیگه ندارن این در یه سطح اون سطح بالاتر و لذا کسانی که آشق درک درست معارف دینی هستند. میکوشند و رنج میبرند که این نردبان رو طی کنند اگر در این درجه به درجه بالاتر بیان همان گونه که امیرالمؤمنین فرمودند اگر کسی دو روزش یکسان باشه مقبونه حالا امروزش بدتر از دیروز که ملعونه که هیچی اگر دو روزش یکسان باشه مقبونه اگر آشورای سال نود معرفت من نسبت به امام حسین و راه امام حسین و فلسفه آشورا و فرمایشات ابی عبدالله نسبت به آشورای نود فرقی نکرده باشد طبق فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلا به من مقبونم که این سیر تکامل تولی رو پیدا کنیم بیایم جلو اما تفاوت عرضی چیه؟ بنده الان در جلو حسینیه ی امام زاده بگم آقا بنده میخوام برم فلکه احمدآباد یه ایده فرمان این, این قسمت یه به فرمان این قسمت و این نمیشه اگه واقعا فلکه احمدآباد اینوره پس شما چرا اینور گفتید مگر میخواید منو ببرید از اونور دور بزنید بیارید به بعضیا بگم آقا دو پنج تا بگی حالا دو پنج تا میتونه 11 بشه این میشه تفاوت ارزی نه باید یکی از اینا درست باشه ما دو سرمایه در درون داریم که حالا شبای بعد عرض میکنم اینو از کجا اومده و چیه ریشش چیه ولی فعلا دارم به عنوان شروع در رابطه با این روایت مولا با این مقدمه وارد میشم ما دو تا سرمایه در وجود من داریم که اینها تفاوت طولی نسبت به حرکت مفید پیشبرنده دارند ما با هم دیگه نیستن با یکی تا یه حدی میتونید پیش برید با دیگری از اونجا به بعد میتونید پیش برید مثال میزنم مثلا فرض کنید الان یه قلعه بنده دوست دارم برم این قله رو فتح کنم میگن شما با هواپیما تا فرودگاه اون شهر میتونید برید پس این مقدار راه هواپیما وسیله خوبیه حالا وارد فرودگاه اون شهر شدم میگن از فرودگاه تا پای قله با سواری میتونی بری اونجا پس اینجا دیگه هواپیما نمیتونه منو ببره نه که هواپیما بده ولی اینجا به بعد دیگه کار هواپیما نیست اینه باید اون اتومبیل منو ببره حالا با اتومبیل رسیدم پای قله میگن اینجا به بعد کاری نمیتونه بکنه باید یا با پای خودت بری جلو یا با اسب و بری بالا مثلا هر کدوم در جای خودش دو تا قدرت در درون ماست که هر دو عالی برای اینکه اعمال ما اعمالی باشه که خدا بپسنده یکی عقل یکی دل حالا اینا فرقش چیه؟ باید قرار با هم بحث کنیم هیچ منافاتیم هم با هم دیگه نداره بعضیا خیال میکنن اگه عقل گرفتی دلو بذار کنار بعضی میگن دل گرفتی عقل رو بذار کنار اینا دوتا با هم دیگه جمع نمیشه این از اشتباهات فاحشه بسیار خطرناکه که انسان رو در تعالی نمیذاره رشد کنه نه دل منهای عقل دل نیست عقل منهای دل پاش تو گله باید عقل و دل با هم همراه بشه حالا اون قسمتی که امشب فقط من دارم اشاره میکنم کار دل اشق است کار عقل فهم است عشق همراه فهم قوغا میکنه عشق منهای فهم بیچاره میکنه فهم تنهای منهای عشق خشک تا فرودگاه شما رو میبره بقیه دیگه نمیتونی بری فهم تو توعم با عشق اوج میده لذا امیرالمؤمنین چی فرمودن؟ این سرزمین چه سرزمینیه مسار او عاشقن شهدا این سرزمین کربلا جایگاه جانبازی شهیدانیست که عاشقن خب حالا دقت کنید به ای که امشب میتونم این بحث و وارد بشم و تقاضا میکنم قضاوت نکنید تا پنج شب تموم بشه چون نیاز دارم آیات، روایات، تحلیل، نقل قول حکما، نقل قول عرفا، جمبندی، تجربه بعد ببینید سر از کجا در میاره اون وقت شخصیتی مثل مولا امیر المؤمنین علیه السلام بفرمایند اینجا جایگاه جانبازی شهیدان عاشق است و چون شهیدان آشقن کسی نمیتونه از اینا صفقت بگیره پس معلوم هر کاری که هر کاری که ببینیم این میتونیم از توش در بیاریم. میشه فهمید یا نه. هر کاری که انگیزه آشغانه پیدا کرد. ولی عشق تو با فهم. نه عشق منهای فهم. کالا عرض میکنم. هر کاری که انگیزه آشغانه پیدا کرد. اون کار یک حساب ای پیدا میکنه. با چیزای دیگه قابل مقایسه نیست. با مثال ارز میکنم. ببینید معمولا وقتی ما میخوایم کاری رو انجام بدیم، از کردم کار اختیاری، احساساتی که بذاریم کنار، تقلید کورکورانه را هم بذاریم کنار، الان میخوایم بر مبنای یک زیربنا، یک انگیزه، یه حالتهای درونی که براش یه پشتوانه درست کنه بتونیم بگیم چرا این کار رو میکنیم الان اگر حضرت علی علیه تو حجرتون یه کاری دارید می‌کنید، همسایه‌تون حجره بغلی بیاد بگه چرا کار رو اگر شما یه تحلیل منطقی درست نداشته باشید سرزنشتون میکنن الان حضرت توی تحقیق علمی مشغول یه جزبه نوشتن یه مقاله نوشتن یه سیدی تکثیر کردنید به شما میگن چی این کاره میکنید اگر شما یه تحلیلی نداشته باشید شما را سرزنش میکنه. حالا ما الان اگر بخوایم بیایم ریشه نه احساسات نه هیجان نه تقلید کورکورانه به این قسمت که بتونیم براش توجیحی داشته باشیم بیابیم ریشه اعمال ما به چیا برمیگرده یک منفعت بر مبنای امید دو منفعت و گریز از ضرر بر مبنای خوف و اما سه فرمایش شما مصادق بر منخیزه شو میکنه برات. یک منفعت بر مبنای امید. آقا توس چله زمستان تو اون سرما اومده داره زمینو شخ میکنه، بزر میپاشه یا میاد تو این باغچه داره بیل میزنه، چه میکنه، چه؟ آقا چرا این کارو میکنید؟ به امید اینکه یه منفعتی از این مزرعه گیرش بیاد دیگه. پس این تحلیلش دیگرانم میپذیرن یا نه اگر بگه چرا داری تو این سرما این کارو میکنی؟ مگه نمیدونی؟ مگه نمیدونی دانش مطرح میشه؟ مگه نمیدونی من الان اینو شخم نکنم؟ الان این رو نپاشم مثال میزنم؟ آیا بعد محصول میتونم داشته باشم؟ پس تحلیل عقلی بر مبنای منفعت چون میخوام نفع ببرم؟ خیلو خوب اشکالی هم نداره؟ بالاخره من با امید منفعت دارم این کار رو میکنم گاهی قضیه به عکسه هوای گرم تابستان هنوز نه بخاری لازمه، نه نف لازمه، نه گازویل لازمه، نه وسیله سوخت گرمایی لازمه. مثلا اون نظام سابق که بوته های خار رو از بیابونها میکندن. طرف تو این گرما عرق می‌ریزه تو این دامنه های بالاپایی میره. با این تیشش داره این بوته خار رو میکنه میاره تو خونه هی هم داره انبار میکنه. آه چکار داری میکنی تو این گرما؟ میگه مگه نمیدونی زمستان در پیشه. تو سرمایه اگه من این وسیله گرمازار رو نداشته باشم پس اینجا این عمل توجیه منطقی داره بر مبنای چی؟ بر مبنای ترس از ضرر ولی یه چیزی از هر دوتا بالاتره میگه نه من برام مطرحه نه از ضرر میترسم دوست میدارم به خاطر دوستی این کار میکنم اما اینجاست که این دوستی اگه غلط باشه بیچاره میکنه. این دوستی درست چیه؟ مثال میزنم دوستی غلط دوستی درست. یه انسانی تقاضا دارم دقت کنید تا اگر امیر فرموده اینا شهدای عاشق بودن یعنی چی؟ دقت کنید. یه انسانی الان پول خرج میکنه، آب روش خرج میکنه بسیار رنج میبره. به خاطر یک معشوقه ای که عقل، علم، تجربه، بزرگترها، اطرافیا همه میتونن با ادله قوی و محکم اثبات کنند این معشوقه به درد معشوق بودن تو نمیخوره. ولی او بر مبنای چی احساسات، حیجان، غریزه، اون جنبه‌های حیوانی و شهوانی وجود دلشو داده. چون دل بر مبنای شهوت داده شده دل بستگی شده دل, بستگی شده دل بستگی شهوانی. لذا منفعت براش واقعا مطرح نیست. ترس از ضرر براش مطرح نیست. چون دل رفته داره دنبالش میره. منطقه این دل اشتباه رفته. معشوق و بشناسه اینجاست که میگیم این دو تا باید با هم گره بخوره عقل و دل عاشق عاقل عادل عاشق شهدای کربلا اقلایی بودن در اوجش عاشقانی بودن در اوجش و این عشق و عقل با هم کارو به جایی رسوند و لذا وقتی در مقام عقل میشد میومدن رجز میخوندن چیکار دارید میکنید تحلیل عقلانه رو ببینید چی میگفتن آوریترین تحلیل حالا بعضیاشو هاشو عرض میکنم ولی از اون طرف جنبه های آشقانه چگونه حالا من این عشق دلدادگی به شکل درستشم عرض کنم ارز کردم یه جوونی مثلا الان دلش رفته بر اساس چی شهوت بر اساس غریزه بر اساس حیجانات و احساسات اینجا دلدادگی صورت گرفته عشق پیدا شده لذا هیچ چیالیش نیست حاضره همه چیزش رو بده برای معشوقش ولی چون پایش خرابه خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میره و دیوار کج اما در اونجایی که حالا این مقدمه درسته من یه نمونه تو همین عالم عرض کنم مادر و فرزن مادر برای فرزن به امید منفعت و به جهت نگرانی از ضرر است که اصاره جان خودشم فدای بچه میکنه یا بر مبنای اینکه این ای فرزند و دوست داره و دلش میخواد فرزند سالم باشه رشد کنه تعالی پیدا بکنه بچه تو دل مادر به گونه ایجا داره که محب بشه لذا مادر چه میکنه حاضر حتی منفعت خودشو فدای منفعت بچه کنه زرر رو به جان خودش بخره که بچه ضرر نکنه چقدر مادرها بودن که بچه هاشون بیمار بودن میگفتن واقعا اگه بشه ما حاضری این بیماری به ما برسه ولی بچهمون سالم بمونه یعنی زرر رو حاضرم بگیرم منفعتم نمیخوام ازش میگذرم ولی بذار او چرا؟ این میشه عشق این میشه علاقه این میشه محبت حالا اگر این درست بود ببینید کار رو به کجا میرسونه؟ پس ما اعمال درونیمون احساسات و حیجان و جبر و همه رو می کنار انسانم که بیعمل عمل تونه به جایی برسه لیسل الانسان الا ما سعاز. پس عملم باید پشتوانه درست درونی داشته باشه این پشتوانه درست درونی که در چول هم دیگه قرار می گیرن عقل و دل عشق رو امشب معنی کنم یه توضیح مختصر بقیهش رو انشالله فرد بتونم بگم خب عقل کارش فهمه درکه شناخته تحلیل دو دو تا چهار تا کردنه که ارز خواهم کرد میداریم کنار دل کارش چیه؟ دل بر پیدا کردن دل داده شدن دل بیاد دلشو ببره ببینید یه نظامی خدا در این عالم قرار داده اسمش گذشته سنت سنت الله ولن تجدل سنت الله تبدیلا او تحویلا سنت خدا حالی بحالی نمیشه سنت خدا تغییر و تبدل پیدا نمیکنه. سنت خدا اینه که ما انسان ها دل داریم و بعد میگم این دل چیه و این عقل چیه این رو انشاءالله فرد شب توضیح میدم ولی فعلا مقدمه بحث عنایت بکنید سنت خدا اینه که ما انسان ها دل داشته باشیم این یک دو سنت خدا اینه که دل بی دل بر نمی تونه باشه همینطوری که معده بیغذا نمیتونه باشه دلم بی نمی نمیتونه باشه وقتی دل به دلبر داده شد اینو در لغت اومدن اسمش رو گذاشتن حالا اگه تو قرآن این کلمه مطرح نشده ولی تو روایات مطرح شده یکیش همین روایت که مرحوم علامه مجلسی تو جلد 44 بهار صفحه 298 از زبان امیر علیه السلام نقل میکنه باز در اصول کافی از امام صادق علیه السلام راجبه من عشقل عبادت داریم و ها کذا که عرض میکنم اما قرآن معادل عربیشو گفته کلمه عشق در لغت میگن که شما ف... تو فارسی اول مرا... اصل کلمه عشق فارسیه عربی نیست معرب شده تو عربی رفته ریش فارسیه به همین جهت در قرآن کریم مطرح نشده چون قرآن خیلی فصیحه ولی تو روایات مطرح شده قرآن معادلش رو به عربی گفته که الان عرض می‌کنم شما در مثلا لغتنامه ده دهخدا تو واژه عشق نگاه کنید لغتنامه معین تو واژه عشق نگاه کنید فرهنگ امید تو واژه عشق نگاه کنید حتی تو کتب لغت عرب منجد رو ببینید منتهی العرب رو ببینید قاموس رو لغت لغاتهای مختلف عشقه چی معنی کردن؟ افرات در محبت افرات در محبت اینجا افرات بار منفی نداره منظور محبت خیلی زیاده منظور اینه قرآن تعبیر قشنگتری به کار برده که حالا عرض میکنم خب اول محبت رو هم بازی یه معنی سادهی ازش بکنم محبت واجه عربی فارسی نیست ما تو فارسی میگیم دوستی دوستی درست معادل محبت عربی نیست دوستی میتونه روابط دوستانه سمیمی عمقی درونی قلبی انسان ها با هم دیگه باشه دوستی میتونه کلک و بازی باشه اظهار محبت و دوستی باشه که تو ادبیات فارسی مام اومده این دقل دوستان که میبینید مگسان ان گرد شیرینی اشاره به همین بحثه اما محبت در زبان عربی چی و میگه حبه دانه است که داخل میبست درونه محبت وابسته شدن از درونه من یه وقت اظهار دوستی لفظی میکنم به یه پردی میگم چاکرتم نوکرتم ارادتمندم این فقط زبانیه قلبی نیست اما یه وقت مثل همون مادر و فرزند که عرض کردم از دل وابسته شده اینو میگن حب چون از حبه گرفته شده حالا اگر اینو حب افراد به این معنی به اوجش برسه اینو میگن عشق لذا میگن کلمه عشق عینش از علاقه است شینش اشاره به شدت قافش اشاره به غلبی علاقه شدید. غلبی یعنی از دل و از درون به یه چیزی وابسته شدن و علاقه پیدا کردن قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه شماره 165 این معنا را با این بیان بیان فرموده و منم ناس و از این انسونهایی که در این عالم هستند من کسانی یعنی که یتخذ و مندون الله اندادا غیر خدا را شریک خدا قرار بیدن اونایی که در سطح خدا نیستن آوردن در عرض خدا قرار دادن ند نقطه مقابل ضده ما تو پارسی میگیم مانند عربی میگه ند ند یعنی شبیه مانند کنار هم مثل هم و من ناس من یتخذ الله اندادن که حب اونا رو دوست میدارن دلدادش میشن مثل دلدادگی به خدا یعنی چی؟ یعنی اگر دلدل دل باشد خوب دقت کنید آیه شریف رو اگر دل دل باشه باید قبل از دل عقل بیاد میدون عقل میاد با عقل تحلیل میکنه آقا چه چیزی در خدا نیست که تو او رو دوست نداشته باشید من با یه مثال ارز کنم اصلا قابل مقایسه نیستا ولی تا حدی به ذهن نزدیک کنه شما یه همکلاسی داشته باشید از کلاس اول ابتدایی اومدید دانشگاه تا دوره دکترا با هم هم کلاس بودید بعد از دوره دکترا با هم دیگه در یه جا همکار شدید الان جفتتون هفتاد سالتونه شما میگیم من از سن 6-7 سالگی تو کلاس اول دبستان تا الان که هفتات سالمه هرچی نگاه میکنم این تاریخ 60 ساله را از این آقا جز خیر جز لطف جز عنایت جز مرحمت جز خدمت بی توقع به من هیچی سر نزده میشه دوستش نداشت ولی میشه عقل چی میگه عقل میگه من شرمندم دیگه در مقابلی همچو فردی حالا عقل در مقابل خدا چی باید بگه مقابل مقایسه است از این خدا در موجودیت من در امکان تعالی من در الطاف گوناگون الهی در مورد من خب این عقل میگه پس چطور من دل به این خدا ندم خب بعد از مرحله عقل میگه دلو به خدا بدید کاره اینو باید بحث کنیم اشاق دل دلداده خدا بودن به چه معنی؟ که لذا سر از پانه میشناختن حالا خدا اینجوری میخواد خدا به امام حسین طبق فرمایشی که در خواب پیغمبر فرمود الله شاهن یراک قتیلا خدا میخواد کشته ببینه خدا میخواد تو رو کشته ببینه چون تو خدا رو دوست داریم میخواد کشته بشی ما هم تو رو دوست داریم ما هم میخوایم کشته بشی ده زا دلداده اینا شده چجوری کشته بشن شب عاشورا وقتی حضرت فرمود بیعتو برمیدارم هر کی میخواد بره, بره بره کجا بریم؟ هزار بارم ما رو بکشن زنده تو عملم نشون دادن دیگه خم برو آوردن تیر از هر طرف میومد با جان میخریدن و چیزی عشق یعنی این حالا میگه برمناناست از این مردم، این انسان ها، چون نوع اناس که میگیم، عموم مردم، خیلی از مردم دلداده پول میشن یا نه؟ دلداده شهوت میشن یا نه؟ دلداده مقام میشن یا نه؟ دلداده تعلقات دنیوی میشن یا نه؟ تحلیل عقلی درست اگر صورت بگیره، از این دلدادگی باید خجالت بکشن. مثنوی مثال ای زده. مرغ بر بالا پران و سایش میدود بر خاک پران مرغ بش ابلهی سیاد اون سایه شود میدود چندان که بیمایه شود بیخبر کان عکس اون مرغ حواست. بی بیخبر که اصل اون سایه کجاست تیر میاندازد بهر سایه او ترکشش خالی شود در جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تف حالا یه انسانی که داره هی تیر میندازه دنبال سایه مرغ با یک جدیت با یک عرق ریختن با یک ولی شما وقتی آگاهش میکنی خجالت ای اه ببینم. این آیه چی میگه؟ میگه به من الناس من یتخذ و من دون الله اندادا معادل خدا قرار دادید؟ در عرض خدا قرار دادید؟ یحبونهم هم که حب الله دلداده پول و مقام و دنیا و میز و ریاست و تعلقات میشن که حب الله اونجوری که باید دلداده خدا بشن اما والذین آمَنُونَ الا مؤمنین کیانن؟ اشد و حبن یعنی شدیدترین دلدادگی خب این معادله چیه؟ عشق دیگه ولی قرآن به این تعبیر به کار برده والذین آمنو اشد و حبن لله شدید حبشون را برای ذات اقدس الهی به کار میبرن پس امشب فقط این مقدار تونستم معنی کنم فرصت بیشتر اجازه نمیده اگر امیر المؤمنین علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدن فرمودن این مکان مناخ و و مسار او عشاق شهدا اینا آشغان شهیدن آشغ یعنی چی؟ آشغ یعنی دلداده دلداده ای که دلدادگیش بر اساس تحلیل عقلی توجیه عاقلانه دارد یرچه خیلی انسان ها بر مبنای منفعت خیلی انسان ها بر مبنای ترس از زرر ولی وقتی به مقام رسید دیگه منفعت و زرر در مقابلش هیچه میگه چی میخوای ممکن اون انسانی که بر مبنای منفعته تو مزرعه داره بیل میزنه چی میخوای انشالله یه حاصل خیلی خوب پایان سال. اون آقایی که سهر رفته در حجرش با کرده تو اون سرماب و گرمای چی میخوای؟ انشالله سود خوبی امروز گیر من بیاد. اون دانشویی که کلی زحمت کشیده کتاب باز کرده میخونه مینویسه زحمت میکشه چی میخوای؟ انشالله میخوام که من بتونم عالم بشم و مدرک تحصیلی من بگیرم. اما وقتی کسی عاشق شد چی میخوای؟ ببینم چی میخواد. من بر مبنای خاص هم دارم حرکت میکنم حالا هرچه چه معشوق بالاتر بود عاشق ارزشش بالاتر میره حالا انشالله میرم جلو و براتون عرض خواهم کرد اگر معشوق معشوق لایقی باشه ببینه عاشق عاشق عاشق رو میاره تو ردیفه خودش از خصوصیات خودش بهش میده لذا خدا از عظمت خداییش به شهدای کربلا داده. ببینید در طول تاریخ چقدر نیرو صرف شده که بخوان عظمت کربلا رو از بین ببرند. یه نمونهش الان داعشی ها که شما در کره زمین میبینید. چه میکنن؟ ولی شما امروز شاید از تلویزیون هم دیدید. این چند روز دیدید. چه خبر کربلا این یعنی این کار میکنه. سر نمیشناسه. ولی تحلیل عقلی هم داره یعنی جلوی از عظمت پروردگار یه اشاره می این کادوی امشب باشه بعد بهش برسم شما در اون دعای معروفی که سند خیلی متقنی هم داره از زمان حضرت آدم بشر این کادوی امشب قدرش بدونید بزرگان گفتن من نقل میکنم به امام حسین می رسید می یا قدیمل احسان خدا یکی از اسماش محسنه، میخواد احسان کنه و هرچه از خدا قراره در این عالم به موجودات و مخلوقات چه در مرحله موجودیت که بعد از موجودیت برای تعالی وجود برسه طبق نظامی که خدا قرار داده با یک حکمتی توعمه مثلا خداوند نظامی قرار داده که گیاه در این عالم اگه بخواد رشد کنه باید خورشید باشه باید ابر و باران باشه تا بینها بی بباره خدا یک احسان عام داره یک احسان خاص میخواد احسان خاصش به خواص برسه حسین مظهر احسان خاص الهی است کربلای امام حسین کاری کرده خاصانی که در رابطه با امام حسین رابطه عاشقانه با امام حسین برخورد میکنند احسان خاص الهی به آنها برسه یعنی امام حسین مظهر یا قدیم الاحسان به حق الحسین یعنی بر مبنای عشق حسین به خدا شد مظهر تجلی احسان الهی به خلق الله اما احسان خاص نه احسان عام که خیلی حسابشم خاصه خب حالا من اجازه بدید امشب جنبندی کنم کافی باشه بقیهشو فردا و فرد شب بیاری خدا ارز کردم امیر فرمود اینجا جایگاه شهیدان عاشق بعد عبارتی بعدش فرمود نه قبلیا به اینا رسیدن نه بعد یا. ما از این این برداشت میکنیم اگر قرار انسان عمل داشته باشه و با عمل به جایی برسه عملی که هیچی با او برابری نکنه عمل آشقانه است اما کدوم عمل عاشقانه عمل ای که با عقلم همراه باشه. عشق چون از دله عمل عاشقانه مربوط به دله. حالا چرا بعضی دلا عاشق پستی میشن؟ بعضی دلا عاشق بالایی میشن؟ یه نمونه هایی تو رابطه کربلا آدم میبینه متحیره. زهیر عثمانی مذهبه. مثلا رابطه ای با امام حسین نداره. تو این مسیر هم همش خیمش و عصبش رو جدا میکرد که خیلی به امام حسین بر نخوره. اما وقتی که تو اون بین راه به هم رسیدن امام حسین علیه السلام زهیر تلبید اون مطرد چی بین امام حسین و زهیر گذاشته ما نمیدونیم. یه دفعه میگیم ما به تعبیر خودمون میگیم منغلب شد. منغلب شد یعنی چی؟ قلبه. قلبش یه جور دیگه شد. دل تکان خورد. دل تکان خورد کار به کجا رسید؟ با اون مقام رسید که شب و آشورا گفت یا حسین هزار بار منو بکشن و زنده کنن دست از یاری تو بر نمیدارم. اما از اون طرف عبید الله ابن حرق جعفی هرچه امام حسین با او صحبت کرد گفت من معذورم وقت بعد از واقعی کربلا هی تو سر خودش می زد می گفت عجب بدبختی من بودم لذا اگه غرار در این عالم به جایی برسیم گونه که قرآن کریم فرمود و لکل درجات مما عملو اگر غرار درجات با عمل باشه باید عملمون رو کنیم برای این که عملمون آشقانه کنه فرداشب و شب بحثشو میکنم باید با دلمون چی کار کنیم و کربلایی با دلشون چی کار کرده بودن لذا چنان دل داده بودن تا آخرین لحظه جندادن استادن ولی وقتی که حالا داره جان میده سرش تو دامن حبیب ابن مظاهره حبیب میگه منم دارم میام اگر نه میگفتم وسیعت کن گفت نه وسیعت دارم چیه؟ با انگشتش اشاره کرد به امام حسین اوسی کن به حاضر شما رو یعنی دل چنان نسبت به امام حسین علیه السلام دل داده شده حالا جان داره افتاده داره جان میده ولی بازم داره بریده بریده به بقیه میگه حواستون باشه معشوق تنها نظرین وقت امام امیر میگه اینجا جایگاه مساره شهدای آشقه خب یکی از این عاشق ها که کائنات در مقابل عظمت عشقش متحیره زینب سلام الله علیه و رابطه عاشقانه، امروز به بعد زینب رو در این رابطه ببینیم. امروز بعد از اول وقتی ابی عبدالله میخواستن به میدان برن لحظات آخر برای ودا خب زینب دلش پر از عشق به حقه زینب است زینت پدر پدری مثل علی وقتی بنا زینت او باشه پیغمبر بگه معلومه یعنی چی؟ لذا از اون دید که یک همچو معشوق و محبوبی قرار مظلومانه به شهادت برسه بیتابی میکنه لذا وقتی که امروز امام حسین علیه السلام اومدن ودا کنن و حضرت زینب فرمودن که آماده باشید من برای شهادت میرم بعد فرمودن این نکته و دقت بفرمایید فرمودن لباسهای خاصتون رو بپوشید معجرهاتون رو مخکم کنید مستر به قول ما میگیم لباس بیرون رفتنتونو حضرت زینب سلام الله علیها پرسیدند داداش برای چی؟ فرمودن چون شماها رو به اسارت میبرن زینب قش کرد امام حسین به زحمتی زینب رو به هوش آورد اما اون رابطه‌ی عاشقانه درون صد اول با زبان بد با عمل با زبان فرمود خواهرم تو دختر علی هستی تو قرار صبور باشی بعد یه دستی رو دل زینب گذاشت همون که عرض کردم معشوق میتونه در عاشق تأثیر بگذاره وقتی عاشق راستین ببینه یه دفعه زینب برگشت گفت داداش برو منم قول میدم ایستادم چنان ایستاده که امرو بعد از ظهر کربلا وقتی سر ابی رو از بدن جدا کردن به خولی دادن خولی با شتاب بر و کوفه به بردار الاماره به ابن زیاد بده و بگو که کار حسین یک سره شد بعد اسبار و نعل تازه زدن به این بدنها تازندن خیمه ها را آتش زدن زن و بچه رو تو این بیابونها دوندن زینب سلام الله علیها از یک طرف آتش خیمه ها را خاموش کنه از یک طرف امام سجاد رو پرستاری کنه از یک طرف این بچه ها و که این گوشه و کنار تو این بیابون ها پراکنده شدن اینها رو جمع آوری کنه اما شما یک منبع به من نشون بدید زینب شکایت کرده باشه ولی وقتی فردا بعد ازورم او اومد تو گودال قتلگاه یه نگاهی به بدن بی ابی عبدالله کرد دست بر زیر بدن بدن رو یه تکون داد یک کمی بالا آورد سر به سوی آسمان گرفت خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. نیمه های شب امشبم در نزدیکی های گودال قسلگاه مشغول نماز شب خودش می شود چون دل به اون دلدار که داده غیر از او چیزی برای او مطرح نیست حالا زینب اینجا داره این بچه ها رو آرام می کنه سر عبی عبدالله چه شد سر و دادن به خولی سر و برداشت اومد با شتاب زمانی وارد کوبه شد که در دارال رو بسته بودن حکومت نظامی بود دیدم شب نمیتونه وارد بشه سر و با خودش خونه برد صبح بیاد دارال تحویل بده ولی در خونه که رسید چون همسر شیعه بود میخواست اون نفهمه دم در تنوری داشتن سر و تو تنور گذاشت در تنور رو پوشند اومد تو خونه نیمه های شب زم سر خولی دید خدایا سر و صدایی میاد، یه نوری از طرف تنور میاد، من که تنور رو روشن نکرده بودم، این وقت شبم که قرار نبود کسی اونجا پخت پس کنه، سر و صدا چیه؟ به نزدیکی تنور آمد، دید صدای قران خوندن حسین به گوش میرسد و شاید یه نقمه ایم مظلومان فریاد میزند عزیز مادرم حسین کربلا میرم بدن بی سرت رو میبینم کوفه میام سر بی تو رو میبینم زن خولی اومد در کنون رو برداشت ای بای حسین مهمان ملشد سلالله ایکا یا مولا یا امام دلال و ایل الارواحی الاتی هلت و علیکم کمی سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل من عمر ولا جاله الله آخر الأهد من لي لزيارتكم السلام على الحسين اللهم باسمك لذیم نعذر علازل جزل اکرم مولانا صاحب الزمن یا الله یا الله یا نا يا یا غازی الحاجان ویا کافی المهمان مجيب كل شيء غدیر برحمتك يا ارحم مزتر در یا یا علی سند من لا سند من الله يا زفر من الله, زفر من الله يا إماد من جاتم من که یا سیدی الکریم نجنا و خلسمان به بسم الله الرحمن الرحیم همه ایجی مول مزتت رئیزاد و یایج بزدون معیجی و یا مستقیسین قسمان قسمان یا غیاسم مستقیسین عجبنا یا مجیب دعوت مزدرین إليا يا حميد بعن محمد يا عالي بعن علي يا فاطر بعن فاطمة يا محسن بعن الحسن يا قديم لسان بعن الحسين وتسعت المأثورين من ذرية حسين خدا به ازترار امشب زینب ازترار بشریت رو با ظهور امام زمان پایان ببخش قلب وجود مقدس امام عصر ما صدور فرمان ظهورش شادان بگردان ما رو در زمره یاران و خدمت گزارانش قرار بده شیعیان دنیا با این مملکت یاری عنایت بفرما دائشیان و حامیان آل سعودان خلیفه کن بفرما جوانانمون در پناه خودت معید بدار اموات و زبی حقوقمون ببخش و بیامون ماراق والد ایناق و اساتیدمون ممیران اون چه امروز به عنوان از آداران ابی عبدالله صبت و ما شد هم جزء اونا قرار بده به نبی و آن.